مجته اینه ما اگر آموزش چیزی رو ندیدیم اگه من بلد نیستم رانندگی کنم همه بزرگره های کشور و همه جاده ها و خیابون ها رو روی من ببندن این مسیر ما میخوایم اوتوبان ها رو ببندیم خیابون ها رو ببندیم کسی نتونه تقدت بکنه خبتا این درست نیست من باید برم آموزش رانندگی صحیح رو ببنم چرخ به هر حال تو دنیا اختراع شده وسیله نقلیه اختراع شده فضای مجازی ابداع شده دارن استفاده میکنن همه این خیابون ها و مسیر ها رو ببندیم یکی رانندگی نکنیم که نمیشه ایران هم از سال 93 بر اساس مسابه کارگروه تعین مسادق مجرمانه اینترنتی، انترنتی ترح فیلترینگ بوشمت را با بوجه دیویس میلیاردی دیویس میلیاردی دیویس میلیارد سوچه نو چهار دیغم زیر زمین یه yeah. نهار, نهار. ما شده همه توخوه همه نی کی میخواد جلوه بگیره همه شکل کس نمیخواهد دریغت رو بمینه من یه فکرم بگو لعنتی دیدیم تا تالا پس صافی نساز ممیریم بالاها برخونده تو صاف کن چون من یه ختم من یه لحظم تحمل نمی کنم بند دستم من یه فکرم فکر رو نمیشه فیلترش کرد نیبه شک که اشده با کنی جای سامسوره روی زن جندهار و فیلترش کن جای اخبار خون و قتل اختلاس و فیلتره چون ا نقصا دست فیلترچیه همه شون ناجو فاجن و ای بی بازن که فیلترچیه با این وضع فهم ملت آزادی با خودم علفه همه دنبال عقیقت بکردن تو من بکردی که تو تش دونگو, دونگو فیلترچی ما رو فیلتر نکن گوه ما رو توی رینگت نخور حقیقت یه ارار بی سلوه بی خود سیستمه تو ریزد نکن ای فیلترچی ما رو فیلتر نکن گوه ما رو توی حقیقت یه اراره بی سلوه بی خود سیسمه تو ریست نکن میلیاردی رو بیخی گل شیفته لخ شده مثل بیبی بی که شاهو ندیده یه چند وقتیه شیفتهی گل شده مغز ردیه مشغول زومبه شده دنبه میخوره قلومبه بشه چون که چشه مردم خورده بهش انگو کرده گربه لهش بدی جای دیگر رو میکنم فاش بدی خودشونو خودشون رو میکنن راست هرچند با اینا فرقی نداره مثل نوشابه بگسم نه و میخورم باز مسئولین پی ماهیان حقوق جای کمک میشن ناجیان دروغ فقط هم پی فیلتر ما انتا ثابت کنن که تازیان دروغ داره میگه خارجی ماشینشون ولی ساده میگه تولید داخله و ساقیاشون میدم مواد جدید و به جوون تی تیوی میگه واسه سلامت زبون هاست مام خریم مخمله گوشه شما خوب من خرم و آسی هم خرموشا فیلتر ما سرگر میده چون ورزش نمی کنه فیلتر, فیلتر نکن گاه ما رو توی رینگت نخور حقیقت یا ایمار رو بیزر و به خود سیستمت рیسد نکن ای فیلتر برو فیلتر نکن گاه ما رو توی رینگت نخور حقیقت یا ایمار رو بیزر و به ریست سیستمت نکن